اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما مَا هرگز به کوکاری نمیرسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید و آنچه انفاق می بیشک خداوند به بی آن آگاه است.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 قل فأتوا بالتورات فتروها این كنتم صادقین همه قضاها بر بنی اسرائیل حلال بود مگر آنچه پیش از نزول تورات اسرائیل بر خود حرام کرده بود بگو اگر راست میگویید تورات را بیاورید و آن را بخوانید فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پس کسی که بعد از این بر خدا دروغ بندد آنانند کس تمکارند قُلْ صَدَقَ فَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بگو خدا راست گفت پس از این ابراهیم که یک تا پرست و حق بود و از مشکان نبود پیروی کنید این انا اول بيت وضعنا مباركا که برای عبادت مردم قرار داده شده همان است که در مکه است که پربرکت و مایه هدایت جهانیان است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 در آن نشانه‌های روشن از جمله مقام ابراهیم است و هر کس داخل آن حرم شود در امان خواهد بود و برای خدا حج خانه کعبه بر مردم واجب است. البته کسانی که توانائی رفتن به سوی آن دارند و هر کس کفر ورزد بیشک خداوند از جهانیان بینیاز است. قل يا اهل الكتاب لما تكفرون بايات الله والله شهيد على ما تعملون بگو ای اهل کتاب چرا به خدا کفر میورزید حال آنکه خداوند بر آنچه میکنید گواه است قل يا اهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون بگو أی اهل كتاب چرا كسی را كه ایمان آورده است از راه خدا باز می‌دارید و می‌خواهید آن راه را کج نشان دهید در حالی که شما به راستی آن گواه هستید و خداوند از آنچه چه می‌کنید نیست يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريق من الذين أُوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافيين أي کسانی که ایمان آورده اید اگر از گروهی از اهل کتاب اطاعت کنید شما را بعد از ایمانتان به کفر برمی گردانند. و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من يعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم و چگونه ممکن است شما کافر شوید در حالی که آیات خدا بر شما خوانده می شود و پیام بر او در میان شماست و هر کس که به خدا تمسک جوید قطعاً به راه راست هدایت شده است. یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ای کسانی که ایمان آورده اید از خداوند آن که شایسته ترسیدن از اوست به ترسید و نمیرید مگر اینکه مسلمان باشید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 و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که دشمنان یکدیگر بودید پس میان دلهای شما الفت داد آنگاه به فضل نعمت او برادر یکدیگر شدید و شما بر لبه گودالی از آتش بودید او شما را از آن نجات داد اینگونه خداوند آیات خود را برای شما روشن میسازد باشد که شما راه یابید. ولَتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُهُمْ يَدْعُونَ إلَى الخَيرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ عن عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ و باید از میان شما گروهی باشند که مردم را به نیکی دعوت کنند و به کار شایستوا دارند و از زشتی باز دارند و آنانند كه رستگارند. ولا لا تکونو کالذین تفرقو و اختلفو من بعد ما جاءهم البینات، و اولائی لهم عذاب عظیم و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختلاف کردند پس از آن دلایل روشن برایشان آمد و اینان برایشان عذاب بزرگی است یوم تبییت دوجوه و تسود فَأَمَّا الَّذِينَ سُعَدَّتُ و جوهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ فَذُوقُوا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ روزی که چهره های سفید و چهره های سیاه می گردد اما آنها که چهره های سیاه شده به آنان گفته میشود آیا بعد از ایمانتان کافر شدید؟ پس به سبب آنچه کفر میورزیدید عذاب را بچشید و اما الَّذِينَ بِيَضَّتُ وَجُوهُمْ فَفِی رَحْمَتِ الله فَفِی رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ خالدون و اما آنها که چهره سفید شده است رحمت خدا خواهند بود آنان در آنجا بیدانند تلك آیات الله نسلوها عليك بالحق و ما الله يريد ظلم للعالمين artifact. اینها آیات خداست که آن را به حق بر تو میخوانیم و خداوند هیچگاه ستمی برای جهانیان نمیخواهد وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست و همه کارها به سوی خدا بازگردانده می شود. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لن ما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون شما بهترين أمتي هستيد که برای مردم پدیدار شده اید امر به معروف میکنید و نهی از منکر مینمایید و به خدا ایمان دارید و اگر اهل کتاب ایمان می قطعا برایشان بهتر بود برخی از آنان مؤمنند و بیشتر آنان فاسق و نافرمانند لایم. یبروکم إلا آذان و این یقاتلوکم یولوکم الأدبار ملا ينصرون اهل کتاب هرگز به شما زیانی نخواهند رسانید جز آزاری اندک و اگر با شما بجنگند جنگند به شما پشت خواهند کرد فتاسياری نمی الذلة برهم تعلیهم إلا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وظلمت عليهم المسكنه ذلك بأنهم كانوا یكفون بآیات الله ويقتلون الأنبیاء بغیر حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون هر کجا یافته شوند مهر زلت و خاری بر آنان زده شده است مگر آنکه در پناه امان خدا و امان مردم باشند و به خشمی از خدا گرفتار شده اند و مهر بیچارگی بر آنها زده شده این بدان سبب بود که به آیات خدا کفر می و پیام بران را به ناحق می و نیز این سزا به خاطر آن بود که نافرمانی کردند و از حدود الهی تجاوز می‌نمودند. لیسو من اهل الكتاب امت قائمت یتلون آیات الله آناء اللیل و هم یسجدون ولی همه آنان یکسان نیستند از اهل کتاب گروهی هستند که درست کردارند در دل شب در حالی که به نماز ایستاده اند آیات خدا را می‌خوانند. یؤمنون بالله والیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و من الصالحين. به خدا و روز قیامت ایمان دارند و امر به معروف می کنند و از کار زشت و منکر باز می دارند و در انجام کارهای نیک می شتابند و آنان از شایستگانند و ما یفعلو من خیر فلن یکفروه والله علیم و هر کار نیکی انجام دهند هرگز کفران نخواهد شد و خدا به حال پرهیزگاران آگاه است این الذين كفر لن تنفع عنهم اموالهم ولا أولادهم من الله شيئا و که اصحاب النار هم فیها خالدون کسانی که کافر شدند هرگز انبالشان و فرزندانشان چیزی از عذاب خدا را از آنان دفت نخواهد کرد و آنان اهل آتشند آنها در آن جا بدانه خواهند بود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 مسائل آنچه کافران در این زندگی دنیا انفاق می کنند، همانند بادی است که در آن سرمایه سخت و سوزانی است که به کش زار قومی که بر خود ستم کرده اند برسد و آن را نابود سازد. خدا به آنها ستم نکرده بلکه آنها خود بر خویشتن ستم کرده اند. يا أيها الذين آمنوا لا تستخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا ودو ما عنفتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بيننا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أي كسانيك إيمان آورد عيد از غیر خودتان دوست و محرم اسرار نگیرید. آنها از هیچ نابکاری در حق شما کوتاهی نمی کنند. آنها دوست دارند که شما در رنج و زحمت باشید. به راستی دشمنی از دهان و زبانشان آشکار شده است و آنچه سینه هایشان پنهان می دارد بزرگتر است. بیشک ما آیات و نشانه ها را برای شما بیان کردیم. اگر اندیشه کنید ها انتم اولائی تحبونهم و لا يحبونكم و تؤمنون بالکتاب كله و اذا لکوكم قالو آمنا و اذا خلو عبدو عليكم الأنامل من الغیر قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور هان، شما کسانی هستید که آنها را دوست می‌دارید در حالی که آنها شما را دوست ندارند و شما به همه کتاب‌های آسمانی ایمان دارید و آنها به کتاب شما ایمان ندارند و چون با شما ملاقات می کنند، میگویند ایمان آورده ایم. و هنگامی که تنها می شوند، از شدت خشم بر شما سر انگشتان خود را به دندان می گزند. بگو، به خشم خود بمیرید، بیگمان خداوند به راز درون سینه ها آگاه است. <تصفيق> اگر به شما نیکی و خوشی برسد، آنها را ناراحت می کند و اگر به شما بدی و گزندی برسد بدان خوشحال می شوند و اگر شما صبر کنید و پرهیزگاری نمایید مکر و نیرنگشان هیچ زیانی به شما نمی رساند بیشک خداوند به آنچه می کنند احات دارد و دو غدوت من اهل کتبوی المؤمنین مقاعد للقتال والله سمیع علیم و یاد آور زمانی را که در جنگ اهد بامدادان دادان از میان خانواده خود بیرون آمدی و مؤمنان را برای جنگیدن در مواضعی میگماردی و خداوند شنوای داناست اِذْ هم الطَّاعِ منكم مِنْكُمْ اَنْ تفشلا والله وَاللَّهُ وَلِیُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ و نیز به یاد آور هنگامی که دو گروه از شما خواستند که سستی ورزند و خداون یاور آنها بود والمؤمنون باید تنها بر خدا توکل کنند ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون و بی گمان خداوند شما را در جنگ بدر یاری کرد در حالی که شما ناتوان بودید پس از خدا بترسید باشد که سپاسگزاری نمایید اِن يمدكم ربكم آلاف من آنگاه که به مؤمنان می گفتی آیا شما را کافی نیست که پروردگارتان شما را با سه هزار فرشت که از آسمان فرود می آیند یاری کند بله، این تصبروا و تتقو و من فورهم هذا یمددکم ربکم یمددکم ربکم بخمسة آلاف من الملائکت مسوومین آری اگر صبر کنید و پرهیزگاری نمایید و دشمن با همین جوش و خروش سراغ شما بیاید پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشت نشاندار یاری خواهد کرد و ما جعله الله إلا بشرالكم ولتطمئن قلوبكم به و من نصر إلا من عند الله العزیز و خداوند آن را جز مجدئی برای پیروزی شما قرار نداد تا بدین وسیله دلهای شما بدان آرامش گیرد وگرنه نه نصر و پیروزی جز از جانب خداوند توانمند و حکیم نیست لیا قطع طرفا من الذین کفرو او یکبتهم فیم تا گروهی از کسانی را که کافر شده اند هلاک و نابود کند یا آنان را خوار و مغلوب نماید آنگاه میوس و ناامیدانه بازگردند لیس لک من الامر شیئ او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون هیچ چیز از کار بندگان در دست تو نیست یا خداوند توبه آنان را میپذیرد و آنان را می بخشاید یا عذابشان می کند زیرا آنان ستمکارند و ما في السماوات و ما الأرض يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء والله غفور رحیم و آنچه در در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست هر کس را که بخواهد می آمرزد و هر کس را بخواهد عذاب می کند و خداوند آمرزندی مهربان است yeah. ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضاعفا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون اي ای که ایمان آورده اید ربا را چند برابر نخورید و از خدا بترسید تا رستگار شوید واتقوا النار اعدت و از آتشی که برای کافران آماده شده است بهترسی. و الله والرسول لعل ترحمون. و خدا و پیامبر را اطاعت کنید تا مورد رحمت قرار گیرید. و تارعون ب مافرات میروبی کو وجن وجنتی نار و حسما و توعدت لل المتق و به سوی آمرزش پردگارتان و بهشتی که پهنای آن به قدر آسمانها و زمین است و برای پرهیز آماده شده است بشتابید. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين آن کسانی که در تمانگری و تنگ دستی انفاق میکنند و خشم خود را فرو میبرند و از مردم در میگذرند و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد إذا الذین فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسهم ذکر الله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 و کسانی که چون مرتكب کار زشتی شوند یا بر خود ستم کنند خدا را به یاد میآورند پس برای گناهانشان آمرزش میخواهند و چه کسی جز خدا گناهان را میآمرزد؟ و به آنچه کرده اند در حالی که میدانند که گناه است پافشاری و اصرار نمیکنند. اولاء کجذب واتمهم من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعمه اجر العاملين انها پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و باغهایی هایی است که از زیر درختان آن جوی ها جاری است جاودانه دران آن میمانند و پاداش نیکوکاران و اهل عمل چه خوب است قد خلت من قبلكم سنن فسیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین بیشک پیش از شما ملتهایی و سنتهایی گذشته است پس در زمین گردش کنید و ببینید سرانجام تکذیب کنندگان چگونه است. هذا للناس وهدى این قرآن بیانیست برای مردم و هدایت و اندرزی برای پرهیزگاران است. ولا ولا تحزنو و و سست نشوید و أندوه گین نگردید و شما برتر هستید اگر مؤمن باشید إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين اگر در روز احد به شما زخم و آسیبی رسید به به آن گروه زخم و آسیبی همانند آن رسید و ما این روزهای شکست و پیروزی را در میان مردم میگردانیم و تا خداوند افرادی را که واقعا ایمان آورده اند معلوم بدارد و از میان شما شاهدانی بگیرد و خداوند ستمکاران را دوست نمیدارد و الله الذين آمین ویمحص الكافرين. و تا خداوند کسانی را که ایمان آورده اند پاک و خالص گرداند و کافران را نابود سازد. أم حسبتم أن تدخل الجنة ولم یعلم يعلم الله الذين جاهدوا و یعلم الله الذین جاهدو منکم و الصابرین آیا پنداشتید که به بهش داخل می شوید در حالی که خداوند هنوز مجاهدان از شما معلوم نداشته و صابران را مشخص و جدا نساخته است وَلَقَدْ كُنْتُمْ خو الْمَوْتَ مِنْ نَ أن تَلق فقد ر أي فقد رأيتموه و, تنظرون و براستی شما مرگ و شهادت را پیش از آن که با آن رو شوید آرزو می کردید کسان را دیدید در حالی که به آن نگاه می کردید. و وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل افا مات او قتلا طلبتم على و مَن علی عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشاكرين. و محمد جس فرستادی اینی نیست که به راستی پیش از او نیز فرستادگانی بوده اند و گذشتند آیا اگر بمیرد یا کشته شود شما به عقب می‌گردید و هر کس به عقب بازگردد هرگز به خدا زیانی نمی‌رساند و به زودی خداوند سپاس گذاران را پاداش میدهد.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 و هیچ کسی جز به فرمان خدا نمی میرد، سرنوشتی است معین و مشخص شده و هرکس که پاداش این دنیا را بخواهد از آن به او میدهیم و هرکس که پاداش آخرت را بخواهد از آن به او میدهیم و به زودی سپاس گذاران را پاداش خواهیم داد و نبی قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنو لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب چه بسیار پیامبرانی همراه اوتوده های انبوه مردان خدایی نبرد کردند، آنها هیچگاه در برابر آنچه در راه خدا به رسید سستی نورزیدند و ناتوان نشدند و زبونی نشان ندادند و تسلیم دشمن نشدند و خداوند شکیبایان را دوست دارد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 ربنا اغفر لنا ذنوبنا و فی امرنا و تبیت اقدامنا و علی القوم الكافرین و سخن آنان جز این نبود که گفتند پروردگارا گناهان ما را بیامرد و از زیاد روی ما در کار من بر ما بیا و گام های ما را استوار بدار و ما را بر گروه کافران پیروز گردان فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره والله يحب المحسنین پس خداوند پاداش این دنیا و پاداش نیک آخرت را به آنها عطا کرد و خداوند نیکوکاران را دوست دارد یا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ایوها الذین آمنون علی ای کسانی که ایمان آوردید اگر از کسانی که کافر شده اند اطاعت کنید شما را به کفر برمیگردانند انگاه زیان دیده برمیگردید بل الله مولاكم و هو خیر بر کافران تیکه نکنید بلکه خداوند یا و مولای شماست و او بهترین یاری دهندگان است سنلقی فی قلوب الذین كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان و مأواه من نار و بیعتمت و به زودی در دلهای کسانی که کافر شدند بین و ترس خواهی مفکند به خاطر اینکه چیزی را شریک خدا قرار داده اند که هیچ گونه دلیلی بر حقانیت آن نازل نکرده است و جایگاه آنها آتش است و جایگاه ستمکاران چه بده است؟ ولقد الله وعده اذ تحسونهم بإذنه حتى اذا فشلتم و في الأمر وعصيتم من بعد ما آراكم ما تحبون مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَنِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ و بعدی خود را با شما در جنگ عهد تحقق بخشید. آنگاه که در آغاز جنگ به فرمان او آنان را میکشید تا اینکه سس شدید و در کار جنگ و جمعآوری غنیمت با یکدیگر به نظاع پرداختید. و بعد از آنکه آنچه را دوست می‌داشتید از پیروزی بر دشمن به شما نشان داد نافرمانی کردید. بعضی از شما خواهان دنیا بود، و بعضی خواهان آخرت سپس برای آنکه شما را آزمایش کند از تعقیب آنان منصرفتان کرد و پیروزی شما به شکست انجامید و از معصیت و تقصیر شما که نافرمانی از دستور پیامبر بود درگذشت و خداوند نسبت به مؤمنان فضل و بخشش دارد إذ تصعدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخراكم والرسول يدعوكم فِي أخراكم فأثابكم غمًا بغم لكي لا تحزنوا لیکی لا تحزنوا علا ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبیر بما تعملون و بیاد آورید هنگامی را که در حال گریز از کوه بالا می رفتید و به هیچ کس توجه نمی کردید و پیامبر از پشت سرتان شما را صدا می زد پس خداوند با غم و اندوهی در پی غم و اندوهی دیگر به شما سزا داد این بدین خاطر بود که بر آنچه از دست دادید و بر آنچه به شما رسیده است اندوه نشوید و خداوند از آنچه می‌کنید آگاه است ما انزل عليكم من بعد الغم امنة عسى يرشا ضائفة منكم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 قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم مَا ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور بعد از آن غم و اندوه آرامشی به صورت خواب سبکی بر شما فرو فرستاده که گروهی از شما را فرا گرفت و گروهی دیگر در فکر جان خود بودند و درباره خدا گمانهای ناروا و باطل همچون گمانهای زمان جاهلیت داشتند می گفتند آیا چیزی از نصرت و پیروزی نصیب ما می شود؟ بگو همه کارها به دست خداست. آنها چیزی را در دل‌هایشان پنهان می‌دارند که برای تو آشکار نمی‌سازند. می‌گویند اگر ما را در این کار اختیاری بود در اینجا کشته نمی‌شدیم. بگو اگر شما در خانه‌های خود هم بودید کسانی که کشته شدن بر آنان نوشته شده بود قطعا به قتل گاه های خود بیرون می‌آمدند. و اینها برای این است که خداوند آنچه را در سینه‌هایتان پنهان دارید بیازماید و آنچه را در دلهایتان است خالص و پاک گرداند و خداوند به راز درون سینه‌ها آگاه است این الذين منكم يوم تلتقى جمعان براستی الله کسانی از شما که در روز برخورده دو گروه فرار کردند در حقیقت شیطان آنان را به سبب بعضی از کردار و گناهانی که مرتکب شده بودند به و قطعا خداوند از آنان درگذشت، بیگمان خداوند آمرزندی برد است. یا <متوسط> ایوها الذین <player> آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا و قالوا لی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 ای کسانی که ایمان آورده اید، مانند کسانی نباشید که کفر برزیدند و درباره برادرانشان چون به سفر رفتند و مردند یا در جنگ شرکت کردند و کشته شدند گفتند اگر آنها نزد ما بودند نمی مردند و کشته نمی شدند تا خداوند این گفتار را حسرتی در دلهایشان قرار دهد و خداوند زنده می کند و می میراند. و خداوند به آنچه انجام میدهید بیناست ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمة خیر مما یجمعون و اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید بیگمان آمرزش و رحمت از جانب خدا از آنچه آنها جمع می کنند، بهتر است و لئن مدتم او قتلتم لئل الله تحشرون و اگر بمیرید یا کشته شوید قطعا به سوی خدا محشور میشوید. شوید فبیما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين به سبب رحمت الهی است که تو با آنان نرم خوب و مهربان شدی. و اگر تند خوب و سخت دل بودی قطعا از اطراف تو پراکنده میشدند. پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن و آنگاه که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن زیرا که خداوند توکل کنندگان را دوست میدارد ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون اگر خداون شما را یاری کند هیچکس بر شما پیروز نخواهد شد و اگر شما را به خود واگذارد، پس چه کسی بعد از او شما را یاری خواهد کرد و مؤمنان باید تنها بر خدا تبکل کنند و ما کان لنبی این یغل و من یغل یعفی بما غل يوم القیامه ثم وفا كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون و هیچ پیامبری را نسزد که خیانت کند و هر کس خیانت کند روز قیامت با آنچه خیانت کرده بیاید سپس به هر کس آنچه را کسب کرده است از نیکی یا بدی به طور کامل پاداش یا سزا داده می شود و به آنان ستم نخواهد خواهد شد افمن اتبع الله کمن بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر آیا کسی که خوشنودی خدا را پیروی می کند همانند کسی است که به خشم خدا دوچار گردد و جایگاه او جهنم است و آنچه بد جاییست هم درجاتون عند الله و الله هر یک از ایشان درجاتی در نزد خدا دارند و خداوند به آنچه می‌کنند بیناست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 و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمت و این کانو من قبل لفی ضلال مبین به راستی که خداوند بر مؤمنان منت نهاد هنگامی که در میان آنان پیامبری از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنها میخواند و پاکیزشان می دارد و به آنان کتاب و حکمت می آموزد و اگرچه پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. اولم ما اصابتكم مصیبتم قد اصبتم مثلیها قلتم أن هذا قل هو من عند انفسکم این الله على كل شيء قدیر آیا هنگامی که مصیبتی در جنگ احد به شما رسید در حالی که دو برابر آن را در جنگ بدر به کافران رسانده بودید گفتید این مصیبت از کجاست بگو آن از جانب خودتان است بیگمان خداوند بر هر چیز تواناست و ما اصابكم یوم التقل جمعان فبی الله فبی الله و المؤمنین و آنچه در روز احد روزی که دو گروه مؤمنان و کافران با هم برخورد کردند به شما رسید به فرمان خدا بود و برای این بود كي مؤمنان را معلوم بدارد وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان یقولون بی ما فی والله اعلم بما و کسانی که نفاق ورزیدند معلوم بدارد و به ایشان گفته شد بیایید در راه خدا به جنگید یا دفاع کنید گفتند اگر میدانستیم جنگی روی خواهد داد مسلماً از شما پیروی میکردیم. آنان در هنگام به نزدیکتر بودند تا به ایمان به زبان خیش چیزی میگویند که در دلهایشان نیست و خدا به آنچه می میکنند آگاه تر است نه قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ اپون مقین قل او عن الموت كنتم کسانی که خود در خانه نشستند و درباری برادران خود گفتند اگر آنها از ما پیروی می کردند کشته نمی شدند. بگو اگر راست می پس مرگ را از خودتان دور سازید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون برگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرد مپندار بلکه زنده اند نزد پروردگارشان روزی داده میشوند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 به آنچه خداوند از فضل و کرم خود به ایشان داده است شادمانند و به کسانی که هنوز به آنها نپیوسته پیوسته اند خوشوقت که نبی می و نه اندوحکین میشوند. شوند یستب نعمت من الله و, و أن الله لا يضيع اجر المؤمنين به نعمت و فضل خدا شادمانند و این که میبینند خدا بند پاداش مؤمنان را زایه نمی کند الَّذِينَ افتَجَابُوا لِلَّهِ وَالْرَسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أجر عظيم. کسانی که دعوت خدا و پیامبر را پس از آن که در میدان احد به آنان زخم و جراحت رسید اجابت کردند و برای تعقیم مشکان به سوی همراه الاسد رفتند برای کسانی از آنها که نیکی و پرهیز گاری کردند پاداش بزرگی است. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم ايمانا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كثاني که مردم به آنان گفتند مردم برای جنگ با شما گرد آمدند پس از آنها بترسید این سخن بر ایمانشان افزوده و گفتند خدا ما را بس است و بهترین حامی است تن قلبو بنعمه من الله وفضل لم ينسهم و اتبع رضوان الله و الله فضل عظیم پس به نعمت و فضل خداوند از میدان جنگ بازگشتند هیچ آسیبی به آنان نرسید و خوشنودی خدا را پیروی کردند و خداوند دارای فضل و بخشش بزرگی است <تسجن> انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه يخوف اولياء فلا تخافوهم وخافو ان كنتم مؤمنين در حقیقت این شیطان است که دوستانش را می‌ترساند پس اگر ایمان دارید از آنها نترسید و از من بترسید. ولا يحزن الذين يساعون في الكف إنهم لينبض الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم و کسانی که در یاری کفر شتاب می‌کنند تو را اندوخی نسازد یقیناً آنها هرگز زیانی به خداوند نمی‌رسانند خداوند می‌خواهد که بهر برای آنان در آخرت قرار ندهد و برای آنها عذاب بزرگی است اِنَّ الَّذِي نَشْتَرَهُ الْكُفْرَ بِالْایمَانِ لَيْمِ يَضُرُوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ براستی کسانی که کفر را به بهای ایمان خریدند هرگز به خدا زیانی نمیرسانند و برای آنها عذاب دردناکی است وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزَّادُوا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِمٌ وَكَسَانِی که کافر شدند. مپندارید که به آنان مهلت می دهیم برایشان بهتر است، ما فقط به آنها مهلت می دهیم تا بر گناه خود بیفزایند و برای آنها عذاب خار کننده ایست. ما کان الله لیدر المؤمنین علی ما أنتم علیه حتى یمیز الخبیث من الطیب،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 مؤمنان را به این حالی که شما بر آن هستید واگذارد گذارد تا آنکه پلید را از پاک جدا سازد و چنین نبود که خداوند شما را از غیب آگاه کند ولی خداوند از میان فرستادگانش هرکس را بخواهد برمی گذیند پس به خدا و فرستادگانش ایمان بیاورید و اگر ایمان بیاورید و تقوا پیشه کنید پاداش بزرگی برای شماست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 و الله بما تعملون خبیر و کسانی که به آنچه خداوند از فضل خیش به آنان داده بخل میورزند گمان نکنند که آن بخل برای آنان خیر است بلکه برای آنها شر است به زودی آنچه را که نسبت به آن بخل برزیدند روز قیامت توقی گردنشان میشود و میراث آسمانها و زمین از آن خداست و خداوند به آنچه میکنید آگاه است <تصفيق> لقد سمع الله قول الذین قالوا ان الله فقیر ونحن غنیا سنكتب ما قالوا وقتلهم الان با بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق براستی که خداوند سخن کسانی را که گفتند خدا فقیر است و ما به شنید به زودی آنچرا گفتند و به ناحق کشتن پیامبران را خواهیم نوشت و میگوییم به چشید عذاب سوزان را ذالک بما قدمت و ان الله بظلام این عقوبت به خاطر چیزی است که دست‌های شما از پیش فرستاده است وگرنه خداوند هرگز به بندگان خود ستمگر نیست الذين <تصفيق> قالوا إن الله عهد إلينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكل قل قد جاءكم رسل من قبلی بالبینات و قلتم فلم قتلتموهم این کسانی که گفتند خداوند با ما عهد و پیمان بسته که به هیچ پیام بری ایمان نیاوریم تا برای ما قربانی بیاورد که آتش را بخورد بگو قطعا پیام برانی پیش از من برای شما آمدند با معجزه‌ها و دلایل روشن و آنچه را گفتید برای شما آوردند پس اگر راست میگویید چرا آنها را کشتید و این کذبوا فقد کذب رسل من قبل که جاءوا بالبینات والذکر پس اگر تو را تقذیب کردند غمگین مباش پیام برانی هم که پیش از تو دلایل روشن و نوشته ها و کتاب روشن آورده بودند تقذیب شدند کل نفس زائطت الموت و انما توفون اجوركم يوم القیامة و من زحزیح عن این ناری و ادخل الجنه تفقد فاد و من الحیات الدنیا ایلا متاع الگروه چشنده مرگه است و همانا روز قیامت پاداشهایتان به طور کامل به شما داده می شود پس هر کی از آتش دوزخ دور داشته شد و به بهش درآورده شد قطعاً رستگار شده است و زندگی دنیا چیزی جز مایه فریب نیست لَتُبْلَهُمْ <تصفيق> اموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا ذن كثيرا وإن تصبروا وتتق فإن ذلك من عزم الأمور قت در اموالتان و جانهایتان آزمایش می شوید. و از کسانی که پیش از شما به آنها کتاب آسمانی داده شده است و نیز از کسانی که شرک ورزیدند سخنان آزار دهنده بسیاری خواهید شنید و اگر صبر کنید و تقوا پیش سازید بدانید که این از کارهای مهم و سترگ است. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِن فَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْمَسِيِّ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءِ أَغْوُورِهِمْ وَأَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِكَمَا يَشْتَرُونَ و بیاد بیاورید هنگامی را که خداوند از کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده شد پیمان گرفت که حتماً آن را برای مردم بیان کنید و آن را کتمان نکنید پس آن عهد را پشت سر خود انداختند و به بهای کمی فروختند چه بد است آنچه میخرند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 کسانی که به آنچه کرده اند خوشحال می شوند و دوست دارند به آنچه نکرده اند ستود شوند قطعا گمان مبر از عذاب الهی نجات و رهایی یابند بلکه برای آنها عذاب درد ناکیست و لله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير. و فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست و خداوند بر هر چیزی تواناست این نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لايات لاول الانباء به راستی در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و رفت شب و روز نشانه‌های آشکاری برای خردمندان است. الذين يذكرون الله قيام و قعود وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقینا عذاب النار کسانی که خدا را در حال ایستاده و نشسته و بر پهلوی خیش یاد می‌کنند و در آفرینش آسمانها و زمین می‌اندیشند و می‌گویند پروردگارا اینها را بیهود نیافریده ای منزهی تو پس ما را از عذاب آتش نگاه دار ربنا اینک من تدخل النار فقد اخذیتن و للظالمین من انصار پروردگارا کسی را که تو به آتش دوزخت درآوری یقینا او را خار و رسوا کرده ای برای استهکاران یا یاورانی نیست. ربنا، این نا ثمیع ما منادی أن آمنوا بر فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار پروردگارا ما شنیدیم که ندادهنده ای به ایمان فرامی خاند که به پروردگار خود ایمان بیاورید پس ایمان آوردیم پروردگارا پس گناهان ما را ببخش های ما را بپوشن و ما را بپوشان و ما را بانیكان بمیران ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلك ولا تخذنا یوم القیامه لا تخلف المیعاد پروردگارا آنچه را بر زبان فرستادگانت به ما وعد دادی، به ما عطا کن. و ما را در روز قیامت رسوا مگردان به درستی که تو خلاف وعده نمیکنی فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من, من ذكر او أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذووا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا لا أكفّر عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. و لأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب پس پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد و فرمود من عمل هیچ عمل کننده ای از شما را زن باشد یا مرد تباه و ضایع نمی کنم برخی از برخی دیگرید و هم پس کسانی که هجرت کردند و از خانه های خود رانده شدند و در راه من آزار دیدند و جنگیدند و کشته شدند قطعا گناهانشان را می بخشم و آنان را به های بهشتی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در می آورم. این پاداشی است از جانب خود و پاداش نیکو تنها نزد خدا است لا تقلب رفت و آمد کافران در شهرها تو را نفریبد متاع قلیل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد این مطاع چیزی است پس جایگاهشان دوزخ است و چه بد جایگاهی است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 ولی کسانی که از پروردگارشان ترسیدند برای آنها است که از زیر درختان آن نهرها جاریست جافدان جا داران میمانند این پذیرایی از جانب خداست و آنچه در نزد خداوند است برای نیکوکاران بهتر است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 و آیات خدا را به بهای ناچیزی نمی فروشند اینانند که پاداششان را در نزد پروردگارشان خواهند داشت بیگمان خداوند سریع الحساب است یا ایوها الذین آمن اصبرو و صابرو و اصبروا واصابرو واربطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ای کسانی که ایمان آورده صبر کنید و دیگران را به صبر و شکیبایی فراخانید و مرزها را نگهبانی کنید و از خدا بترسید شاید راستگار شوید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 وَخَلَقَ مِنْهَا ذُكْرَهَا وَبَثَّ مِنْهُ مَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أي مردم از پروردگارتان بترسید، آن کسی که شما را از یک تنافرید آفرید، و همسرش را نیز از او آفرید، و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد، و از خدایی که به نام او از همدیگر درخواست می کنید. و همچنین از گسستن پیوند خیشاوندی بپرهیزید، بیگمان خداوند همواره بر شما مراقب است،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 و انبال ناپاک خود را با انبال پاکی یتیمان عوض نکنید و انبال آنان را همراه انبال خودتان با مخلود کردن نخورید به راستی که این گناه بزرگی است و این خفتم الا تقسقو فی الیتاما فن ما طاب لكم من النساء فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرْبَاعِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَا أَلَّا تَعُولُوا وَأَجَرْ که در حق دختران یتیم نتوانید عدالت را رعایت کنید، از ازدواج آنها صرف نظر کنید و با زنانی دیگر که مورد پسند شماست، دو دو و سه سه چهار چهار ازدواج کنید. پس اگر بین دارید که نتوانید ادالت کنید، به یک زن یا به آنچه از کنیزان کمالی که مالک آنها اید اکتفا نمایید، این کار نزدیکتر است به اینکه ستم نکنید. و آتون نساء صدقاتهن نشله ف طبن لكم عن شیئی منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا و مهریه زنان را به عنوان هدیه باتی به خاطر به آنان بدهید پس اگر آنان چیزی از آن را با رضایت خاطر به شما بخشیدند، آن را حلال و گوارا بخورید ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولو لهم قولا معروفا و انوال خود را که خداوند آن را وسیله قوام شما قرار داده است به سفیهان و کمخردان ندهید و از آن به آنها روزی دهید و آنان را لباس بپوشانید و با آنان سخن شایسته بگویید و بتلویتا ما حتی اذا بلغوا النكاح فان این آنستم منهم رشدا فادفعوا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 فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا و یتیمان را بیازمایید تا بختی که به سن ازدواج و بلوغت رسند پس اگر در ایشان رشد کافی یافتید اموالشان را به آنان بدهید و آن را از بیم آنکه بزرگ شوند به اصراف و شتاب مخورید و هر کس که بی نیاز است باید از گرفتن حق و زحمه خودداری کند و هر کس که نیازمند است باید به طرز شایسته بخورد پس هرگاه اموالشان را به آنها بازگرداندید برایشان گواه بگیرید و خداوند برای محاسبه کافی است للرجال نصيب ما تَرَكَ الوالدان وَالْأَقَرَبُونَ ولنسائ نصيب مم ما الوالدان والاقربون ولنسائ قَلَّ مِنْهُ قل نصیبا مفروبا برای مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جای گذاشته اند است و برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جای گذاشته اند سحمیست خواه آن مال کم باشد یا زیاد این بهره و سهمی فرض و تعین شده است و اذا حضر القسمت اولو القربا والیتاما والمساکین فرزقوهم منه و قولو لهم قولا معروفا به هرگاه فیشاوندان و یتیمان و موسمندان بر تقسیم میراز حاضر شدند چیزی از آن انوال به آنان بدهید و با آنان به طور شایسته و نیک سخن بگویید وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ, فليتقوا الله وَلْيَقُولُوا قولا و کسانی بکسانیک اگر فرزندان ناتوانی پس از خود بر بگذارند بر آینده آنان میترسند باید از ستم دربار یتیمان مردم نیز بترسند پس باید که از خدا بترسند و سخنی سنجیده و درست بگویند این الذين ياكلون اموال الیتاما ظلما انما ما فی في بطونهم نارا. انما ياكلون في بطونهم نارا کسانی که اموال یتیمان را به ستم میخورند جز این نیست که آتش را در شکم خود فرو میبرند و میخورند و به زودی به آتشی برافروخته درآیند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 مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْن آباؤكم وَأَبَنَاؤكم لَا تَجُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ خداوند در باری فرزندانتان به شما سفارش می سهم پسر چون سهم دو دختر است پس اگر دختر بیش از دو دختر باشند دو سوم ترک بهری ایشان است و اگر یک دختر باشد نیمی از ترک ازان اوست و برای هر یک از پدر و مادر وی یک ششم از ترکه می باشد در صورتی که میت فرزندی داشته باشد پس اگر فرزندی نداشته باشد و تنها پدر و مادرش از او ارز برند برای مادرش یک سوم است و اگر او برادرانی داشته باشد سهم مادرش یک ششم است پس از انجام وسیعتی است که او به آن سفارش کرده و بعد از عدای دین است شما نمیدانید. پدرانتان و فرزندانتان کدام یک برای شما سود من ترند؟ این احکام فریزه ای از جانب خداست و بیگمان خداوند دانای حکیم است. ولکم نصف ما ترک ازواجکم این لم یکن لهن ولد. فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما تركم من بعد وصيتي يوصين بها أودين ولهم الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهم نصف مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يرثك لالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصیت یوصا بها اودین غیر مضار وصیت من الله والله علیم علی و برای شما نصف ترکی همسرانتان است اگر آنها فرزندی نداشته باشند و اگر فرزندی داشته باشند، یک چهارم ترکی از آن شماست، پس از انجام بسیتی که به آن سفارش کرده اند، و بعد از ادای دین است. و برای زنان شما، یک چهارم ترکی شماست، اگر شما فرزندی نداشته باشید، پس اگر فرزندی داشته باشید، یک هشتم از ترکی شما از آن آنهاست، بعد از انجام بسیتی. که به آن سفارش کرده اید و بعد از ادای دین و اگر مرد یا زنی که از او ارث میبرند کلاله باشد و برای او برادر یا خواهر باشد پس برای هر یک از آن دو یک ششم است و اگر آنها بیش از این باشند در یک سوم شریکند پس از انجام وصیتی که به آن سفارش شده و بعد از ادای دین به شرط آنکه زیانی به ورثه نرساند این حکم و سفارش خداست و خداوند دانای بردبار است تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم اینها حدود الهی است و هرکس از خدا و پیام برش اطاعت کند را به باقهایی درآورد که از زیر درختان آن نهرها است در آن جاودان اند و این پیروزی است. و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا یدخله نارا خالدا فی وله عذاب و هر کس از خدا و پیام برش نافرمانی کند و از حدود او تجاوز کند و را در آتشی وارد می کند که در آن خواهد ماند و برای او عذاب خار کننده است.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 حتی ی الموت او ی الله لهن سبيلا. و کسانی از زنان شما که مرتکب زنا می شود چهار نفر از خودتان بر آنان گواه گیرید پس اگر گواهی دادند آنان را در خانه ها نگاه دارید تا مرگشان رسد یا خدا راهی برای آنان قرار دهد والذان یأتیانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما إن الله كان توابا و از میان شما آن مرد و زنی که مرتکب آن عمل زشت میشوند آنها را آزار دهید پس اگر توبه کردند و درست کار شدند از آنها صرف نظر کنید زیرا خداوند توبه پذیر مهربان است. اینم التوبت على الله للذین يعملون السوء بجهالت ثم يتوبون ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَلِيبٍ فَأُولَائِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ علیما حَكِيمًا جز این نیست که پذیرش توبه از سوی خدا برای است که از روی جهالت و نادانی کار بدی انجام میدهند سپس به زودی توبه می کنند. اینانند که خدا تو را میپذیرد و خداوند دانای حکیم است. و ليست التوبت للذین يعملون السیئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال إن تبت الان؟ قال اینی توبت الان وللذین یموتون وهم هم اولئک اولائی اعتدنا لهم عذابا علیمه و برای کسانی که کارهای بد مرتکب میشوند تا وقتی که مرگ یکی از ایشان فرارست میگوید اکنون توبه کردم توبه نیست و نه برای کسانی که در حال کفر میمیرند اینها کسانی هستند که برایشان عذاب دردناکی آماده کردیم یا أيها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترسون النساء کرمات ولا تأخذوهم لذهاب ببعض ما آتيتمهم إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهم بالمعروف فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَاءً تَكْرَهُو شَيْئًا فعسا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا ای کسانی که ایمان آبرده اید برای شما حلال نیست که از زنان به اکراه ارس برید و آنان را زیر فشار قرار ندهید تا برخی از آنچه را که به آنان دادید پس بگیرید مگر اینکه آنها مرتکب عمل زشت آشکاری شوند و با آنها به طور شایسته رفتار کنید و اگر از آنان کراهت داشتید پس چه بسا چیزی را خوش نمی دارید و خدا در آن خیر بسیار قرار میدهد وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم همسری همسر برگزینید. و به یکی از آنان مال فراوانی پرداخت اید چیزی از آن را پس نگیرید آیا آن مال را به بهتان و به گناه آشکار باز پس میگیرید؟ و کیف خون و اف ب و میسب مالیوا و چگونه آن را باز پس میگیرید؟ در حالی که شما با یکدیگر آمیزش نموده اید و آنان از شما پیمانی محکم و استوار گرفتند. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا و با زنانی که پدرانتان با آنها ازدواج کرده اند ازدواج نکنید مگر آنچه زمان جاهلیت بوده و گذشته است چرا که این کار عملی زشت و منفور و راه و روش بسیار است؟ جُرِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن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 حرام شده است بر شما مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و مه و خاال و دختران برادر و دختران خواهر و مادرانتان که به شما شیر داده اند و خواهران رضائی شما و مادران زنانتان و دختران همسرانتان که در دامان شما پرورش یافته اند از همسرانی که با آنها همبستری کرده اید. پس اگر با آنها هم بستری نکرده اید، بر شما گناهی نیست، و همچنین زنان پسرانتان که از پشت و صلب خودتان هستند، و نیز جمع میان دو خواهر بر شما حرام است، مگر آنچه که در گذشته رخ داده باشد، که خداوند آمورزندی مهربان است.